فصل هم. دو روز به عید فسح و عید فتیر مانده بود سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند آنها می می‌گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد مبادا مردم آشوب کنند وقتی عیسی در بید انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گرانقیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر ایسا ریخت بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور طور تلف شود میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند. اما عیسی فرمود. با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت می کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود. و هر وقت بخواهید می توانید با آنها کمک کنید. اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمیامد برای من کرد. و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید. در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن دوازده حواری بود پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را با آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدن خوشحال شدند. و به او وعده پول دادن، یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا ایسا را تسلیم کند. در اولین روز عید فتیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را زپ می کردن, شاگردان به ایسا گفتند در کجا می خواهی شام فسح را برای تو آماده کنیم؟ ایسا دو نفر از شاگردان خود را فرستاده آنها گفت. به داخل شهر بروید در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند به دنبال او بروید. و به هر جا که وارد شد شما به صادخانه بگویید. استاد میگوید: آن اتاقی که من با شاگردانم فسح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگی؟ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد در آنجا برای ما تدارک ببینید شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فسح را دیدند وقتی شب شد عیسی با آن دوازده حواری آنجا آمد موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند ایسا با آنها فرمود یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا میخورد مرا تسلیم خواهد کرد آنها محزون شدن و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ ایسا فرمود که یکی از شما دوازده نفر است که با من همکسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود، برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگذاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود بگیرید این بدن من است بعد پیاله را گرفت و پس از گذاری با آنها داد و همه از آن خوردن. ایسا فرمود، این از خون من که برای بسیاری رخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خاندن سرود عید فسح، آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود: همه شما از من روی گردان خواهید شد چون کلام خدا می‌فرمایند: چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم. پتروس به عیسی گفت: حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم ایسا به او فرموید یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه که خروز دو مرتبه بانگ بزند تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناست اما او با ایسا جواب داد، حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناست دیگران هم همین را گفت وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، ایسا به شاگردان فرمود وقتی من دعا می کنم شما در اینجا بنشین و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را خود بود ایسا که بسیار مسترب و دلتنگ شده بود به ایشان فرمود از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم شما اینجا بمانید و بیدار باشید ایسا کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد و رنج نصیب او نشود. پس گفت ای پدر همه چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دور ساز، اما نبخواست من بلکه به اراده تو. ایسا برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت ای شمعون خواب هستی؟ آیا نمیتوانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از ها بدور بمانید روح مشتاق است اما جسم ناتوان عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را وقتی برگشت باز هم آنها را در خواب دید آنها گیج خواب بودند و نمیدانستند چه جوابی به او بدهند عیسی بار سوم آمد و به ایشان فهم. آیا باز در خواب و در استراحت هستید ؟ بس است ساعت معود رسیده است. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخی زید برویم آنکه مرا تسلیم می کند الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن دوازده حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود، کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا با آنجا رسید، فورا پیش ایسا رفت و گفت ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتن و محکم بستن. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به قلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل ایسا فرمود، مگر من یاقی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید. من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم میدادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا میفرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختن. جوانی که فقط یک پاچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود، به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتن، امو آنچه برتنداش رها کرد و اریان گریخت. ایسا را به حضور کاهن اعظم بردن و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محبوته خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم میکرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه ایسا به دست آورن تا حکم اعدامش را صادر نماین. اما مدرکی به دست نیاوردن. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادن، اما شهادتهایشان با یکدیگر سازگار نبود. ادهی بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند. ما شنیدیم که می گفت، من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن ازم برخواست و در برابر همه از ایسا پرسید، به این اتهاماتی که به تو نسبت می جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمیداد. باز کاهن ازم از او پرسید، آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت، هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان میآید کاهن ازم گریبان خود را چاک زد و گفت دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست شما این کف را شنیدید؟ رأی شما چیست؟ همه او را مستوجه به ایدام می دانستند. بعضیها آب دهان به رویش می انداختند. و چشمهایش را بسته و با مشت او را میزدند و میگفتند از بگو کی بگو چی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند پتروس هنوز در محووته پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهین اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت، تو هم همراه ایسای ناصری بودی. پتروس ممکر شده گفت، من اصلا نمیدانم و نمیفهمم تو چه می گویی؟ بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باس هم او و به اطرافیان گفت این هم یکی از آنها است. پتروس باس هم کار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند تو حتما یکی از آنهایی چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگن یاد کرد و گفت من این شخص را که شما در باره صحبت کنید نمی شناسم درست در همان وقت خروس برای دومین دو بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود. پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی و به گریه افتاد